خدا البته در عشق قبلا صحبت کردیم که بیشتر بر اساس عشق زناشوی بوده امشب الله دستمی داریم که عشق رو از جنبه ارفانیش لیکمی مورد نظر قرار بدیم که این روزا هم خیلی رو جهه بحث فرهنگی و ارفانی هستش قبلت هر چیزی بیتره عشق رو به خودی خودی تعریفی بکنیم عشق از اونجایی که یکی از باحتنی ترین زندگی انسان هست یعنی یکی از قلبی ترین و لوحانی ترین به اندرونیترین وقای وجودی زندگی هست بنابراین، عشق از هر نوع عشق ارفانیترین واقعی است. ارفانیترین به معنای باطنیترین روحانیترین نهانترین نامریترین، میتافیزیکیترین واقعی زندگی انسان هست بنابراین عشق از هر جنسی تعریف عشق حتی اگر عشق ارفانیم نباشه عشق تعریف عرفانی داره برای اینکه واقعی عرفانی است. عشق رو میشه همونطور که بسیاری از متفکرین و فلاسفه تقسیم بندی کردن که درستم هست میشه به دو نوع عشق ایساری و عشق تصرفی تقسیم کرد عشق تصرفی رو ما در جلسه ای که قبلا در مورد عشق زنانشویی صحبت کردیم، صحبت کردیم اینجا وقایع اشاره میکنیم. عشق تصرفی اساساً عشقی غریزی عشقی خواهنده عشقی بالعند، عشقی مصرفی که عشق زنانشویی، عشق کلم نژادی، عشق درون درون خانواده عشق بین والدین و فرزند، از جنس عشق تصرفی است. در حقیقت این عشق بر نیاز هست و نیازی کاملا غریزی مادی و است. عشقی حیاطی است یا حیوانیست به زبان دیگر آن کسی که دوی عشق میکنه یا در جایگاه عشق قرار داره کسی است که مشور رو کمساش فرزند پدر مادره رو فقط به عنوان کسی میخواد که بهش سرویس بده بهش خدمت کنه در حقیقت، در همچین عشقی، آن کسی که در جایگاه عشق قرار داره و خوش آشق میدونه، او در حقیقت باید گفت، یک آدم خوره، یک بد است هست، در نقطه مقابل عشق ایسایی. در واقع، او میخواهد بخوره، درسته، این محشوق باید برده ها و نیازهای او باشه، حالا این محشوق همسر فرزند مادره، همونطوری که باز کن پدر مادر، و یه دوره ای که بچهاشون رو بزرگ کردن زمپس عشق به فرزند به صورت عشق به بلیدن اراده فرزنده و فرزند باعثی موجودی بشه که تمام خواسته های پدر مادر رو اعضا کنه این یه نویست یا فرزند عشق فرزند به پدر مادر یک عشق تیامدن دنیاوی که فرزند میخواد که تمام اراده و امیال خودش از طرق پدر مادر اعضا بشه تا زمانی که این باشه این به این باز از هر طرف باشه این عشق تصرفی بلنده است، گران است. باز در چه عشقی که باز اسمش رو عشق نجادی هم بذاریم عشق جنسی هم اسمش میشه گذاشت چون عشق بین والدین و فرزند از جنسیت برمیخوزه دیگه از رابطه زناشوی برمیخوزه عشق تصرفی یا عشق جنسی در اگر عشق همیشه با ایثار و فران شدن در معشوق تعریف میشه حداقل در ادبیات ما و یا کلا در ادبیات جهان عشق اصولا بزرگترین صفت و ممیزش اگه ایثار هست از طرف عاشق این عشق تصرفی عشق نیست با ضد عشق یا اسمش عشق زده چون ایثار درش نیست که ایچی او اصلا میخواد معشوق خودش رو ایسار عاشق بخونه در مشوق محشوع فدا بشه در واقع باست که این اشق واجگونسالاره برای همین در ادبیات و کلام و خودمون این رو سعی کردیم از قلمرو روی واجشناسی خارج کنیم این نوشه این نیاز نیاز جنسی است نیاز اقتصادی است یک نوع نیاز شدیده همینطور که باز اون نیاز شدید به هر چیزی رو در فرهنگان مردم عشق میذارم طرف عاشق قدرته عاشق سروته عاشق اینه که با فلانی ازدواج کنه ببین؟ عاشق به دست آوردن خوردن، کسب کردن در واقع باز کن در عشق طرف عاشق خودشی اصاسن عاشق امیال خودشه و دیگران همه محشوق های هستن که باستی فدای این آقای عاشق یا خانم عاشق باستی بشن خود که این عشق ضد عشق عشقی است بلنده نیاز شدیدی است نیاز شدیدی رو اسمش رو شاید صورت بشه هم پیشو گذشت از اونجایی که اشک مقدسی هست که واژه‌ای مقدس است و در فرهنگ و ادبیات ما مخصوصاً جایگاه خاصی داره بهتر ما اسم رو در چه مواردی به کار نبریم این لغت رو تا حد و حدود قداست این واژه روشن باشه و در فرهنگ و ادبیات ما سوء تفاهمی ایجاد نکنه شما که در واقع ببینید که هیچ واژه و معنای به عشق در فرهنگ مردم مورد سوءاستفاده و سوء تفاهم نیست سوءتفاهم و سوءاستفاده حاصل از واژه عشق و ادعا عشق یکی از بزرگترین قانونهای تولید جنایت جنون و فجایع بوده و هست در این مورد ما قبلا صحبت کردیم اینجا بحث نمیکنیم که از جمله معروفترین این فجایعی که به اسم عشق صورت میگیره در رابطه جنس مخالف در رابطه با همسر در اونجا مفهوم حقیقی شده ما اینجا اساساً میخواییم به عشق حقیقی بفردازیم که عشق ارفانی است که همان عشق است هست مفهوم حقیقی عشق به با بیاندگر با باستی عشق سروفی رو بگیم عشق ضده عشق یا عشق تناسخی باستی اسمش رو بذاریم حتی یا عشق منافقانه باستی اسمش رو چه باست میشه گذاشت. چون در قرآن فرهنگ هر واجه و معنای دارای دو مفهوم متضاده یک مفهوم حقیقی و یک مفهوم جعلی و کاذب یا شیطانی حقیقت باست گفت، اون جنبه کاذب و جعلی لغت عشق کاربردش در عشق جنسی و زناشوی و نجادی هسته اشق، یا عشق بسید وقت قدرت عشق به جهان خاری عشق به جهان خاری اینو به تر خب، از این بحث مرحله که بگذاریم عشق به بیان دیگر در قلم روی فرهنگ عرفانی عشق عشق رو در یک کلام میشه گفت بارت است هست اراده به فنا اراده ذاتی به فنا این اراده اراده عقلانی یا تصنوعی یا برنامه شده نیست وقتی از کلمه اراده استفاده میکنیم منظورمون اراده است. اون اراده ای اراده است اشق از این دیدگاه بالاتر است از اراده به فنا شدن اشق به فنا شدن بلا همینده در دوری ارفانی اشق به فنا همیشه با هم دیگه به کار و به بیان دیگر اشق یعنی اشق به در خود نبودن اشق به بی خود شدن عشق به غیر شدن به زبان دیگر اراده به در اینجا نبودن اراده به در خود نبودن عشق به در آنجا بودن عشق به در یک کسی دیگری بودن حالا کمال این عشق در معرفت دینی معرفت عرفانی یعنی عشق در به در خدا بودن عشق به بودن با خدا و در خدا بودن یا عشق به فنا شدن در حق یا در خدا و در حقیقت عقل محسوس و مادی ما همون میشه عشق به فنا چرا؟ از اونجایی که خداوند اون حقیقت مطلق در قلمرو ادراک حسی و مادی ما جا نمیگیره لذا مثل اینه که خداوند وجود نداره برای همینه میگیم خداوند مقیم به عرش فناست بنابراین که عاشق ایک میخواد به خدا برسه در او باشه و در او فنا بشه یعنی بایستی انگار فنا بشه خودش یعنی خودش بایستی سالک که وادی فنا باشه تا برسه به اون عرش فنا که خداست البته لغته چون خداوند مسحر وجود مطلب و جاودانه است. موتور در عقل یقینی و علीयتی و حسی و مادی ما خدا عین فنا به نظر می Rسته برای همین گفته میشه که خداوند رو با واسطه عقل الی و عقل محس محسوس و حسی نمیشه فهمید حالا می خدا وقت در کله فهمیده نمیشه در ذهن فهمیده نمیشه خدا این خداوند در ذهن عین عدمه این نیستی وجود نداره اینجوری میشه بنابراین عشق به معنای میل به بی شدن میل به از خود گذشتن از خود فنا شدن از خود گذشتن عشق عشق به از خود گذشتن خب باز یک جنبش روحی و ذاتی است دیگه برنامه ریزی و مسلحتی و علمی و فنی و فلسفی مسلمان چنین این عشقی نمیتونه باشه خب بس مهوره یکی از مهوره های موضوع عشق اصلا خوده، کلمه خوده. خود کلمه خود، خود از خود گذشتن از خود رها شدن از خود فنا شدن ما خود بی خود شدن و بنابراین باستی کمی بفهمیم خود اصلا چی است که انسان ازش میخواد بگذاره ازش میخواد فنا بشه خود خود چی است؟ این بحث و البته بحث مستقل و مفصلیه ما در اینجا انقدر تا خب بنابراین اگر کسی قرار سالک وادی فنا بشه و تجربه عشق داشته باشه در واقع عارف یعنی عاشق برای این عشق و عرفان اصلا جدا ناپذیره عارف کسیه که عاشق به فنای از خوده و بقای در خدا و از عارف کسیه که دارای چنین عشقیست دارای چنین اراده قوی و شدید در ذات خودشه اراده به فنا خب بنابراین پس اول بایستی خودی باشه در انسان تا این خود بخواد فدا بشه فنا بشه دیگه یعنی ببین دیگه انسان اول بایستی خودش باشه به تمام و کمال آه؟ پس اولین اگر بگیم اقا عشق ارفانیم شرطی داره؟ بله، وجودی یکی از نخستین شرط و شروطش اینه که انسان باعثی اول خود باشد خود شده باشد خود خودش باعثی باشه انسان این اولین شرط ساله که وادی عشقیرفانی شدنه برای این را یک هست بخار بیشتر نیست کل مراتب عشقیرفانی مراتب گذشتن از خود و فنا شدن از خود تا رسیدن به خدا عددی. و کسی که خودش پی خوده بز اصلا این حرف در موردش سید نمیکنه کنه چنین کسی اصلا عاشق نمیشه خب این یکی از مهمترین مسائلیه که به نطورت ما دیدیم در قردبیات عرفانی ما حتی در موردش حرفی زده شده باشه در عشق عرفانی ما کتاب ریاد داریم کم نداریم قزالی، اینون غزاد، ابن عربی، نمیدونم. روزبهان باغلی ولی من در اونجا کدامه نگیدم که این موضوع رو کسی انگوش باشه و بحث کرده باشه در عشق الفانی و ادبیات یا ما عشق همیشه به عنوان یک موضوعی پشت آسمان نفتون بحث شده هرگز در انسان و به عنوان واقعیت وجودی انسان بحث نشده متأسفانه. لذا تمام مباحث استعاره است لذا همیجان با شعر بحث شده با مثال و هزاران سال محتاج تفسیر است اصلا کنی که یک عارف موجودی اصلا زمینی نیست که در موردش بخواد بحث زمینی بشه متاسفاد باید من از درمه این نقص است یک عارف که همون عاشق وادی فناست قبل افرچیزی بایستی خود باشد خود شده باشد این شرط اقال یعنی انسان به میزانه که خود هست و خودش شده به خودش رسیده یک هویت مستقل خودی هست او میتواند عاشق شود یک دو انسان به میزانی که در این خود و هویت خودی و ذاتی خود مستقل و قدرتمنده او به همون شدت در ذات خودش استقاق عاشق شدن رو داره باصی دوم نکته بسیار اساسیه اگه بخوایم مبانی عشق اخرفانی رو توری بدیم این دو تا اصل از مبانی و اصول اولیه‌شه چرا اون خود ذاتی و اون هویت فردی و اون استقلال شخصیتی هر انسانی محل برخواستن عشق محل خیزششه چرا انسان به میزانی که خودشه میخواد از خود بی خود بشه یعنی عاشق میشه این خودش بحث این بحث رو کردیم از این بود این توضیر بدیم که از آنجایی که به از عزد علی علیه اون خود خود هر کسی خود خداوند هست و این احساسی که هر کسی داره به اسم من خودم اون من هر کسی، اون خود هر کسی ذاتش خود خداست به که انسان ذاتن خلیفه خداست در واقع انسان چون برچه خدا نشسته میگه منم خودم این خودم منم یعنی من خدا هستم حس خدایی که بدن خب این حس هم به معنای مقام خلافت اللهی انسانه یعنی به معنای حضور و روح در انسانه روح خدا در انسانه, روح خدا در انسانه. به این دلیل انسان احساس خود میکنه هیچ موجود انسان خود و خودیت نداره، هیچ ایوانی نداره، هیچ میمونی نداره، فقط انسان این ممیزه توابط ذاتی انسان با ایوانی. انسان تنها ایوان یکی احساس منیت و خودیت میکنه. چون خلیفه خداست و صاحب روح است. خود همین اگر به معرفت برسته حقوقش عدا بشه منشای هدایت و عشق ارفانی و الهاق و دیدار با خداست، در این صورت ما جای اشد و کفر انسان همین خود است اما منه هم میتونه من جای اشد زلالت و شیطنت بشه مشاوره قضفیت انسان میتونه باشه ها واسه کی یادم با این خود چه برخوردی بکنه اگه با این خود با معرفت برخورد کنه حقوق این خود رو از دیدگاه معرف الهی و دین و اخلاق ادرا کنه یا یعنی اینکه نکنه با این خود فقط بازی کنه خود بازی کنه من بازی کنه این بنابراین... خب اینو میدونیم که هر انسان این خودیت ذاتی خودش اون خدیهت ها همینه میگیم هویت وقتی میگیم فلانی آدم به هویتیه یعنی اون منش اون خودش خیلی مستحکم و قوی و ریشه‌داره انسان با هویت همونطور که انسان بی هویت یعنی انسان بی خود یه انسان بازیچه هیچ چیزی از خودش نداره یه مصرف کننده است ها یه انگله خب این خود خطابی خودی رو در انسان ما داریم دیگه انسان به میزانی که داره این هویت ذاتی هست این من ذاتی و این خود ذاتی هست یعنی صاحب روحی قدرت است و به هم میزان که انسانی لایق عاشق شدن هست و عاشق میشه و انسانیز عاشق به میزانی که خودش خب انسان چگونه به خود میرسه و این خودیت و این هویت ذاتش تقویت میشه تغذیه میشه خب این همون چیزیست که بهش میگن تعلیم، تربیت، اخلاق، تدین، تقوا، تسکین نفت، خودسازی، خودشناسی ها؟ به میزانی که به خودش میپردازه ها؟ خودش روش میذاره. به خود اون من و هویت ذاتی خود میشه. یعنی خود یک موجود کاملا الهیه. خب این خود اینکه میگیم من، اون کی، کجاست؟ ما می‌بینیم این من واقعاً تن نیست، در تن نیست. اون کسی میگه من این صدا از تن بر می‌خویزه، ولی اصلاً تنی نیست، این من تنی نیست واقعاً جسمانی نیست. اصلاً خود خداست که میگه من. وقتی انسان میگه من چنین میگم، من چنان میگم، من اینو میخوام، اینو نمیخوام، آه؟ این داوطلب خداست که داره انسان حرف فهمیده. انسان اگر بفهمه این خداست که از هوگو میباشد میگه من. برامن خودشناسی به خداشناسی میرسه. برا همین علی فرمود که خود، خوده هرکس خداست. برای همین اگه من این خودی که در من هست، منی که در من هست، رو، من درش نقل بزنم، به ذاتش در اونجا با خدای خودم دیدار میکنم. و انسان مباهد میشم، یعنی با خدای خودم ملحق میشم. در خودمان، ندر آسمان. باز شد که انسانی بیخود اصلا عاشق نمیشه انسانی بیخود، یعنی بی هویت آره عشقش همه عشق تصرفیه که اول شبتمون گفتیم که در واقع عشق زده عشقه. یه بلنده است یه خورنده است، یه مستفه کننده حالا همه آدم ها میخواد بفر... ببله و همه آباستی به این سرویس بدن و برده و بنده این باشن یعنی موجودیه چرا اینقدر بلنده است بیخودی آدم بی ها؟ چرا برای اینکه خود نداره اون فکر میکنه اگه دنیا رو شاید خودش بشه اصلا جهان خالی به زبان امروز امپریالیزم حاصل بیخودی انسانه جهان امپریالیستی جهان بیخودیه بیخودیه یعنی جهان بیخداییه جهان است. جهان قهدی زده یک شیطان آتش گرفته است. مستر هایی که درفتانات ها تعریف میکنن دنیا رو میخواد به بلعه. چون انسانی میخواد آدمهای موقع خودشون ببزه دیگران رو احساس مننگ ببزه شاید در درون خودش یک لحظه من بشه خودش بشه چیزی بشه اصلا یعنی آدم میشه یهو آدمی درش بیاد حالا که بابل ایدان دیگران چنین ای نمیشه که چی انسان روز بروز قاتیزاده تربیتخته دیوانه مجنون و جانی مجنون و میشه فرهنگ جهان امپریالیزم و جهان جهان جنون و جنایت مایتا و انهدام جهان جهان جهان انهدام واقعا علمش منهدم کننده است فرهنگ جهان است همه چیزش کننده و نابود کننده است انسانی خود انسان دیوانه دیگه انسان دیوانه یعنی مجنون مجنون جانی خب نابرین انسان اهل ایمان اهل دین حق پرست با تقوا کسی در مسیر فضیلت تلاش میکنه جهاد میکنه این به کم کم نطفه خود در ذاتش بسته میشه و این در بزرگ میشه کم کم یه کلام در حقیقت کارگاه خلق خود در انسان اون خود انسانی انسان اون خود روحانی انسان اون خود هویت زای انسان در یک کلام چیزی جز تقوا نیست یعنی دین خدا چرا چرا؟ تقوا یعنی چی یعنی خویشتنداری یعنی خودداری یعنی مخالفت کردن با نفس خود با هواهای نفسانی مهار کردن، تربیت کردن آه. چرا؟ این در حقیقت انسان به میزانی که با خودش مبارزه میکنه خودش رو تربیت میکنه، مهار میکنه صاحب آن خود الهی، خود انسانی و خود روحانی میشه این خودش، یک بحث کاملا دیالکتیکیه دیگه نه؟ یعنی اون خود الهی انسان حاصل نبرده انسان با خودشه خود حاصل نبرده با خوده تقویه این دیگه نه؟ چرا علا شنینه؟ ببینیم انسان ذاتا در خلقت قدیم و ازلیش صاحب روی خدا هست دیگه نه؟ منطقه این رو کی تبدیل به حوییتی خلاق و فعال و نرد میشه در دست صاحبش مثلا در دست من وز خونده شدم اینجا به میزانی ای که عهد تقویه هستم اون خود الهی در من آشکار میشه حالا چرا چنین هست اینم برای یک حریقتی است این قانون ذاتیه این بزرگترین قانون حاکم بر وجود انسان تقواست یعنی آنچه که 124 دور پیانبر آمدن تا تقوا رو تفییم کنم و تعقیم کنم نه برای کاری نمیواد دیگه تمام احکام شرعیه تو احکام برای اینکه ما قبلا این سوالی کردیم در اون بحث اونجا ما گفتیم که عاشق حقیقی عاشق کامل فقط خداست بست حتی یک انسان عارف که انسان عاشق هست حقیقتا هم او شامن نداره بگی من عاشقم چون خدا رو میشنسیم میدونه که عاشق خداست عاشق چی؟ عاشق نیچی از هستی خودش گذشته تا به محشوق خودش هستی ببخشه به محشوقش هستی شد داده و خودش نیست شده یعنی کی خدا یا خدا نیست نه کو به جای پذرش منو خدا, هست؟ خدا هستی شو به انسان بخشیده و خودش نیست باز خدا عاشق است و لا غیر بنابراین هر کسی هر دلیجه دلیجه به هر دریجه که دعوایش میکنه او به دریجه جاهله و اصلا این عشقش یا دروغ یا شیطانی است یا شیطانی شیطانیم نیست با این ادعای عشق این عشق رو هیچکند داره میکنه و این نیست که شوط شیطانی میکنه اسم میذانی که دعوی میشه پس هم دیش ایتنات میده. برای اینکه دروقه. انسان در مقابل خدا عاشق نیست. یک مصرف خونندست. مشبول اون اشق مصرفی و... و تصرفی میشه. عاشق وقت خداست. چرا هست؟ اشق درشته به انسان هست. هستم. هستی برشده. من اینجا نشستم. صاحب هستیم. میگم من. ولی خدا نیست. خدا غیب شده. نیست. این عشق خداست. اصحار خداست نسبت به انسان. این کمال ارحمالالله همینی اوست پس خدا از خود گذشت تا من انسان من بشم حالا برای این خب او کجاست؟ او در من هست خب مگر روحشو در من نده میده او در من هست من پنهان هست. در ذات من نهان هست و برای این دیگر عرش فنا همون ذات انسانه اون عرش آسمان نیست اون آسمان آسمان ذات انسانه خب او از خود گذشت تا من من شدم آدم شدم، انسان شدم، خلیفه او شدم بر جای او نشستم و او نیست، نه؟ من در صورتی میتونم به این ایسای خدا به این حقی که خدا بر اون قائل شده اون حقی که لایقش نبودم برای اینکه مثلا نبودم که حق داشته باشم به میزانی به این حق میگستم که اون حق همون وجود الهی منه اون من روحانی و خدایی منه که از خودم بگذرم با خودم به جنگم جهاد اکبر تقوا ها و از خودم نااحتم بگذارم به میزانی که از خودم میگذرم به خودم میرسم این منه انسانی و روحانی و هوییتی و هویی منه این من هویی منه من منی من نیست من هویی منه یعنی من الهی و روحانی منه به میزانی که بر علیه این نف این من حیوانی خودم مبارزه میکنم. بعضش میگذرم به اون من علهی خودم می رسم همونطوری خداش نگرد تا؟ خود خدا از خود گذشت من بی‌ذام شدم منم با از اخلاق الله باستی تبعیت کنم تعلق اخلاق الله یعنی این تعلق اخلاق الله اینا یعنی صحبت بگذارم من با از خود بگم تا به خدا برسم همونطوری که خدا از خودش گذشت منو دیدیستم پیتم شد ها من با از خود بگم تا به خدا برسم خدای کیه خدا همون ماله من منه, منه ها خوئے ماله کوفیت الهی منه کوفیت جاودانه ای منه خ خب، بنابراین یک انسان اهل تقوی و معرفت و از خود گذشته انسان اهل فضیلت در مسیر تخلق و به الله زندگی میکنه به تدریج به خود میرسه و خودش میشه انسان میشه به میزانی که چنین میشه تازه استحقاق و لیاقت عاشق شدن پیدا میکنه کنه که خود شد عاشق شد اینو خدا میگیم چرا خدا عاشق بود؟ بلکه خودش بود و از عشقش این جهان هستی رو خلق کرد از قدرت عشق او جهان رو آفرید خلاقیت حاصل عشق خب هر خود شد در واقع میشه به خداییت خودش رسیده خلیفت الله شد هر که خلیفت الله شد هر که خود شد عاشق شد آشق میشه خب. بنابراین این بحث تو مطلق کردیم حالا اینو بیاریم در نصفیت انسان به دریجه ای که ها؟ به خودییت انسانی و الهی و روحانی خودش میرسه این استقاق عاشق شدن بدا شدن بزرگترین استقاق انسان در جهان، وظیلا بزرگترین عجز خدا به انسانه. عجز بزرگتر از عشق نیست که خدا به انسان بده. عجز چه چی چیزی است؟ جهاد در دین و تقوا. عشق عجز دینه تلاش در دین. عاشق شدن خوشبختی انسانی انسان در جهان همون عاشق شدنشه. خوشبخت در حقیقت فقط عاشق خوشبخته ما هم بدبختم. درست به همین دلیل هر جایی که عاشقی باشه همه میبینن که همه با حالش از میخورن و آدم های شقی و بیاتی و کافر دشمنش میشن چرا هم میشه عارفان اینقدر دشمن داشتن و اکتران کشته شدن به دست ها کشته شدن چشم دیدن انسان خوشبخت رو ندارن چشم دیدن انسانی که خودش رو ندارن. منتن خودشه چون بی خودن دیگه این از مفتش شد انسان خوشبخت نه انسان عاشق رستگاری فلاح فوز عظیم همه اینا یعنی عاشق شدن فقط عاشق شد رستگار شد به فوز عظیم رسید خوشبخت شد تام شد و این اجر تلاش انسان در دین و تقوا مداریس بنابراین باید گفت که از این دیدگاه باید گفت که دو نوع عشق داریم عشق خودی و عشق بیخودی عشق برخواسته از خودیت و و عشق برخواسته از بیخودی و پوچیگیدی این عشق در واقع بیان دیگری از همون دو نوع عشقی که اول ترهیر دیم عشق ایثاری، و عشق دسلوفی عشق حاصل از بیخودی و پوچی و بیحوییدی تبدیل میشه به عشق تسردوفی و بل انده همه عشقی که اومن در جوامه حاکم اینه دردون میاد. این عشق, عشقی که همه براش هر باده میگیشن این رو عشقه بل اندگی، به میزانی که بی خوده ها میخواد دیگران رو بخوره، جهان رو بخوره تا یه لحظه شاید احساس وجود اشتسبده احساس وجود همه احساس خودیت دیگه اصاد وجود دنی من چون انسان ذاتا موجودیه که خاطر اینکه الله جسمانی وجود داره اصاد وجود ندارد یک حیوان یک دلار خصوص وجود دارد در خودش ذاتا انسان ندارد انسان باستی برای رسیدن به این وجود تلاش میکند چرا انسان وجود حیوانی داره و هویت حیوانی انسان ارزانم میکنه برای همین انسان میگن حیوانی سخنخوار و جهانخوار انسان تا اون منه روحانی و الهیش نرسه احساس وجود نمیکنه. و در قهدی وجوده در قهدی بودنه خب و انسان به میزانی که احساس وجود میکنه و خودشه خوب. به عشق ساری میرسه یعنی میرسه که از خودش بکتره و دقیقه اون کسی که من نداره خود نداره ها؟ فکر میکنه با بل دیگران ها؟ به دست میاره ولی اون کسی که داره او عاشق میشه در اون نیازی برتر بدید میاد که اسمش عشق عشق در واقع باز کفت برسر نیاز انسان عشقه نیازه به عاشق بودن خوب حالای مقدار تر عشق عرفانی رو باز و باید دیگه باز گفت این عشق نوع اول همون عشق عرفانیه و این عشق دیگر این عشق تصرفی این عشق بلنده اون عشق است عشق قریضیست در باقی چرا است؟ دیگه عشق کرکرانه است آه؟ مثل عشق جنسی عشق کرکرانه است دایه آدم یک ذره نمیدونه اون کسی که عاشقش روزه مثلا اون کیه چی هستن چه است اصلا دلش هم ننخواد بدون اون چه کاره است آه؟ خب این نیازی جنسیه دیگه این نیازی غریزیه خب این اسمشون عشق رو داشته خب این الازه فکر و فرهنگ باقعه غلطه این اسمشون عشق نیست اون نیازی جنسی خب است بازی ازدباش کنه، دیگه. طبقه اون جوک معروفی که میگن، میگن یکی اومد بسر اومد پیشه، پدرش گفت، پدرشم من عاشق شدم گفت خب مبارک باشه، اینها بریم خستقالیش را دار دیگه به وصال برسی کی اون؟ گفتش که هرکی شما بگید آه؟ خب این جوک خیلی عرفانه یه یعنی واقع به طریق اینه که ما بفهمیم که تا چد این عشق نیست آه؟ عاشق مشغله نداره رو اصلا چه عشقیه ها خب بیشتر نیازمنده دیگه مشکل جنسی پیدا کرده خب اون چرا سلومونیه چون عرفانی نیست چون عرفانی نیست سلومونیه روحانی نیست نورانی نیست روشن نیست یعنی عاشق مشغله شو نمی‌شناسه نمی‌خوام اصلا برایش مهم نیست ها چرا برای اینکه اون عاشق چیزی چیز دیگه ای شده ها اون می‌خواد ازدواج کنه خب ازدواج کردن چه عرفان و نور و نورو که یه حیوانی، هیوانی مگه نیاز به روح و روحانیت دارم مگه نه خیلی خب <تصفيق> عشق عرفانی یعنی عشقی که درش شناخت هست درش معنا هست درش ارزش هست دانایی هست درش بصیرت هست درش خرد هست بعد اونایی که میگن آقا جان ما عاشقیم اش را با عقل چکار؟ این از همین عشق است که هم برش مشتبر شده که جاییدن اسمش عرفان هم میذارن اون کسی که تدامه عنوان عرفان و عشق با عقل ستیزه میکنن عقل رو خرد رو حکمت رو مسخره میکنن مسخره میکنن چون ندارن خودش اونها مسخرهش میکنن از فرط بخت مسخرهش میکنن یعنی موقع آقا عقل و معرفت این عرف ها مال احمقاست بابا که عاشق نیستن ما عاشقیم و ما عارفیم ال چیه بری کشکشو بسوه از این عرف ها تو جامعه موم هست به اسم عرفان به اسم دلویشیگلی که تخته ای عقل و خرد و شعوره و بعد نمیاد. این اونی هستون عشق هیچ فسقه دیگر توش دارن نمیاد آخرشم به اعتیاده این اگه اسمشو عشق بذاریم عشق ظلمانیست شعور نیست معرفت نیست، شناخ نیست و اصلا مهمم نیست. اصلا مهمم نیست. طرف عاشق جا طلبیه. میگه من عارفم. عاشق. طرف مشکل پولی داره، بدکاره، دنبال یه گنج بزرگی میگه من عاشقم. عاشق گنج گنج، گنجه. عاشقم اصلا میلیارد پول بالاورده است. آه؟ از این عشقه ما زیاد داریم از این عرفانه. ببین گفتیم کسی که در مسیر تخلق و اخلاق الله اقواه و فضیلت اون هویت ذاتی به اون من الهی خودش تا حدودی به هر درجه که رسیده این همش در ایجاد داره مطلق نیست رسیده او اصلا عشق به نیاز, نیاز پیدا میشه تباقی اشق اول نیاز پیدا میشه نیاز روحانی است بعد عشق اتفاق میفته. در حقیقت، این انسان میخواد این خود خودش رو فدای یک حقیقت و ارزش و معنا یا فدای یک انسان و موجود برسری بکنه. این ذاتی ببینید این ذاتیه. چرا بکنه؟ بباسون، نه که منطقی نیست. منطقی دو, دو, دو, دو چهار و الیتی نیست. چرا انسان وقتی به اون خود ذاتیش میرسه میخواد اون رو فدا کنه؟ این ذاتی، این الهیه آه؟ چرا برای این خودی که انسان بشه از طریق معرفتی دینی و تقوار رسیده از طریق تسکیه رسیده از طریق تخلق و اخلاق الله رسیده به این منش پس این من منیست دارای گوهره الهی این من الهیه من الهی هم همیشه خداییه من الهی همیشه عاشقه میخواد این رو ببخشه در واقع این میخواد از خودش بگذره میخواد خودش رو فنا کنه میخواد خودش فدا کنه در اینجا ما عشق رو به عنوان ذاک میتونیم ببینیم گیره ذاتی است یه قریزه الهیست اگه اسمش رو کاریزه بذاریم یکی نیاز ذاتی به اسم نیاز به فدا و فنا کردن خود برای کی؟ برای یک حقی برتر از خود ببین پس اینجا معرفت لازم داره و من خودمون حودی رو میشنزم چی هم دیگه؟ فدا کردن خود برای کسی که برتر از من است این سر خلقت در انسان سر خلاقیت فدا کردن خود برای دیگران این همون نطفه و ای هست که از توش خلقت درآمده، اومده همون کاری خدا کرده خلقت آدم هستی محصول عشق و ایسار و کرم پروردگاره محصول عشق خدا به غیر خودش غیر خدا کی بود؟ عدم بود آه؟ عشق وجود به عدم. انسان به میزانی که به وجود و به گوهره وجود میرسه عاشق میشه درسته؟ و میخواد بگذره. بعد این ایثار در ذات هویت انسانی و روحانی انسان هست بنابراین انسان های بخیل و بلنده به همه میزان انسان های شقی و خودخواه خود خودپرست در واقع انسان های هیچ هیچو انسانی بی وجودن بی وجود, وجود مفهوم حقیقی کلمه یعنی موجودیت انسانی ندارن اون گوهر انسانی ندارن دغتی زدن، عالم و آدم رو میخوان قورت بدن درسته ها و یه پاپاسی هم سخاوت و بخشش نداره بخیل بخیلن ها بخیلن کافر دیگه کافر یعنی بی وجود بی وجود یعنی بی خود بی خود یعنی بی‌هویت ها لاماش ایکس اصله ما دردی یک تیف هستش خب بز معلوم شد که عشق ارفانی یعنی چی تایه خدودی در دو دوان سازه عشق ارفانی یعنی که عشق معنوی عشقی که درش شناخت هست درش است. هست انسان در روشنهایی عاشق میشه خب طبیعی است که این عشق عشق به بقال مروف خوبان هست اشق به کسایی که بهتر از من هست بستر از من هست حقتر از من هست عشق به خدایی که خودتر از منند این خودشون خدایی از منه و خودشون خودی از منه خودشون ذاتی تر از خود منه تسل مراتب بی خودودی هم که داریم که ساس مرتب جنون و کفره ساس مرتب خودی هم داریم تا دا اون جایی که خود خود خود خداست. هم کسی که اون کمال خداییت خود رسیده او از اولیا الله است او امامه او انسان کامل کسی که به خداییت خود رسیده در خود به حق خود رسیده به حق یقین رسیده انسان کامل در درجات خب نابراین اسم متوجه اولیا الله میشه متوجه خدای خدایتر میشه ببین اشرفانی این بستر عشق عرفانی است و اون کسی که معشوقه یا اسمش یاره یا دوسته در حقیقت در فراغی رفانی ما کسی است که بهش میگیم عارف پیر، مرشد، امام دوارن دیگر باید که این نیاز ذاتی انسان به امامه پس امامت یک نیاز ذاتی است این بس توی و صباده شناسی رو نمی کردیم اینجا بود یه دیگری از همون حوزه‌اته ها نیاز به امام داشتن خود این نیاز ذاتی است در سلسله مراتب تکامل و تعالی انسان انسان به میزانی که به اون خودش به اون خویشتن درونی می احساس محلیه باسی مهم داشته باشه این همون عشقی که شروع شده درست برای همینه رابطه بین چنین کسی وقتی معشوقش رو یارش رو یافت پیرش رو امامش رو یافت خب در اینجا صحبت فقط بر سر ارادت سبت بر سر اطاعت محض در اینجا مورید معموم بایستی فدای امام بشه ها؟ مرید باستی در مراد فنا بشه تا چه بشه اون خود خدای خودش برسه تا با خود خدای خودش برسه انسان به میزانی که به یک گنجی میرسه به یک میرسه هی میخواد به اردشی برسر برسه درسته؟ کسی که بر اساس تلاشی که در دین کرد به حداقلی از خود رسید بوی اون خود رو شنید یعنی بوی خدا رو شنید ها، او رو میفتدن دنبال خود خدا که به خود خدا برسه پس این نیازی است ذاتی و غریزیه برای انسان غریزی است آه. خب ببینید حالا این آیه قرآن یا کنید این که این کسایی که ایمان رو بردن، استقامت کردن تلاش کردن سبت کردن در دینشون خداوند بر اونا منن ناد و از نزد خودش امام شاهد یا پیل فرستاد تا هدایت بشن هدایت بشن مثل دیگی بزن خود خدا این؟, این آیه در واقع کل این صحبت ما این آیه بود که این خودشون به این نیاز میرسن. آن خدا هم میفرسته کسی رو براشون. خداست که میفرسته. تا به خدا برسونه اینها رو. به اون خود مطلق برسونه. به اون خداییت و اولوفیت خود برسونه.